دوستای گلم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما از اینکه شما در این کلاس‌های مهیج با ما همراه هستید وقتیم. بررسی ما از کتاب پیدایش شروع شد و حالا به عهد جدید رسیدیم و حالا نامه‌های رسالات پولس رسول رو بررسی می‌کنیم که تقریبا نیمی از عهد جدید رو در بر گرفته. در جلسه قبلی ما بررسی خودمون رو از نامه اول پولس به کلیسای قرنتیان رو جمع کردیم. امروز به مطالعه کتاب دوم قرنتیان میپردازیم. خدا میخواد که ما در مورد پولس و خدمتی که به عنوان یک شاگرد داریم چیزهای زیادی رو بدونیم. اجازه بدید به معلممون ملحق بشیم و درس امروز رو گوش بدیم. امروز می به بررسی نامه دوم قرنتیان بپردازیم. همونطور که در اول قرنتیان به بررسی و توضیح در مورد اون پرداختیم، این روش رو در این نامه هم دنبال می کنید. به این دلیل که ما نامه اول رو بررسی کردیم و پولس قبلا هم نامه به قورنتیان نوشته بود، با اطلاعاتی که داریم این نامه به قورنتیان رو باید به نامه دوم و سوم قورنتیان نامگذاری کنیم. من به این موضوع وقتی که در نامه اول قرنتیان بودیم اشاره کرده بودم. پولس نامه اولش رو به قرنتیان از افسوس نوشت. وقتی که پولوس نزدیک به پایان خدمت عمومی سه سال و نیمهش در افسوس بود، نامه اول قرنتیان رو فرستاد. ما وقتی اون نامه رو بررسی کردیم، فهمیدیم که توسط تیتوس به قرنتس رسیده. وقتی ما به رسالات شبانی برسیم، تیتوس رو ملاقات خواهیم کرد. او مثل تیموتاوس نیست، تیتوس یک شیخه، او یک مرد بالغ و محکمه، پولس اعتماد خیلی زیادی به تیتوس داشته. پولس پس از اینکه سه یا سه سال و نیم رو در افسوس گذرنده بود، به این دلیل که آشوبی رخ داده بود، مجبور به ترک این شهر میشه. این برای پولس خیلی تأثیرگذار بود، چون اگر آشوبی در کار نبود، شاید پولس مدت بیشتری رو در اونجا میموند. او بیشتر از اینکه جای دیگه ای باشه در افسوس مانده بود. پولوس در مدرسه تیرانوس این شهر تدریس میکرد. نسخه خطی وجود داره که در پانویسش عنوان کرده پولوس هر روز از ساعت 11 تا 5 یا 6 بعد از ظهر توی این مدرسه تدریس میکرده. بر اساس شواهدی که از خدمات تعلیمی پولوس در افسوس وجود داره بسیاری از کلیسه پیرو کلیسای افسوس بودن. کلیسه های مثل پرگاموم، ازمیر، سارتس، فیلادلفیه، تیاتیرا و لاودکیه هفت کلیسایی که در کتاب مکاشفه عنوان شدند از کلیسای افسوس پیروی می کردن. از شواهد اینطور پیداست که پولس یه سمینار پرسمر رو در مدرسه تیرانوس افسوس می گذرونده. در باب 19 اعمال رسولان شما در مورد آشوبی که پولس را مجبور به ترک افسوس می کنه می وقتی او افسوس رو ترک کرد هنوز به نامه ای که توسط پولس به قرنتس فرستاده بود فکر می کرد. پولس میخواست بدونه که قرنتیان چطور نامه رو دریافت کردند پولس وقتی افسوس رو ترک کرد هنوز سفرهای بشارتی در پیش داشت او مدت زیادی را برای تیتوس و ترواس صبر کرد اما بعد از اینکه به اندازه کافی صبر کرده بود برای تیتوس این پیغام رو میفرسته. من در فیلیپی منتظر تو هستم فیلیپی کلیسای مورد علاقه پولوس بود. زمانی که پولوس برای خدمت در قرنتوس و بقیه جاها مثل افسوس و تسالونیکی به سر می برد مسیحیان فیلیپی او را حمایت می کردند. وقتی که پولوس به فیلیپی میره، تیتوس به او میرسه و در مورد تاثیرات نامه در قرنتوس صحبت می کنه. بیشتر خبرها خوب بود. تیتوس می گفت که قرنتیان تمام چیزهایی رو که پولوس از اونها خواسته بود، با محبت و سمیمانه حقیقتا خبر خوبی بود با این حال تمام خبرهایی که پولس از تیتوس شنید خوب نبودند تیتوس گزارش داد که افرادی در قرنتس گفته اند که پولس دیوانه است اونها نامه پولس رو اصلا دوست نداشتند. این موضوع برای من جالبه که افرادی که مخالف نامه اول پولس به قرنتس بودند استدلالی در مورد نامه نداشتند من فکر می کنم که منطق الهام گرفته پولس رسول در اول قرنتیان انکار نشدنیه اونها هیچ کدوم از نکاتی رو که پولوس در این نامه گفته بود رد نکردن اونها نتونستند به منطق این نامه حمله کنند چون الهام گرفته بود. پس اونها به تنها چیزی که میتونستند حمله کردن. اونها به خود پولوس حمله کردن. اونها به شکل ظاهری پولوس حمله کردن. پس او مجبور نبود که دیگه برای اونها اهمیتی قائل بشه. یکی از مفسران میگفت که اگه خدا میخواست از جنس خودش بیرون بیاد و برای خودش بدنی بسازه حتما بدنی مثل پولس می ساخت. بعد از تمام چیزهایی که پولس انجام میده، البته فقط در مورد بعضی از اونها صحبت میکنه. پس او مجبور نبود که دیگه برای اونها اهمیتی قائل بشه. پولس احتمالا مشکلی توی چشمهاش داشته. این ظاهرا از نامه های او برمیاد که نشون میده پولس خوب نمیبینه. قرنتیان در مورد وضعیت بدنی پولس ایراد می گرفتن از ظاهر جسمانی او که پولس ضعیف بوده و چشم هاش خوب نمیدیده هر این نامه خیلی سنگین بود ولی پولس با شجاعت تمام تمام این انتقادها رو می نویسه و اون رو به دست کس دیگه ای می میسپاره تا برای قرنتیان ببره اونها این رفتار پولس رو نقد میکنند که چرا این رساله فوق‌الاده شبانی رو توسط تیتوس فرستاده و خودش نیومده تا رو در رو با این مشکلات مواجه بشه قرنتیان پولس رو به خاطر این حقیقت که او سخنران خوبی نیست نقد کردند. اونها بر اساس استانداردهای انسانی سخنرانی او رو نقد کردند. اونها میگفتند، تا به حال موعظه‌ای بدتر از این نشنیدیم. وقتی که پولس خبرهای بعد رو از قرنتس شنید، دوباره قلم الهام گیرنده خودش رو برداشت و رساله دیگه ای رو نوشت که خیلی برام جالبه که پولس در اول قرنتیان به راهنمایی گروهی پرداخته که پیرو پولس بودند، کسانی که من بهشون لقب طرفداران پولس را هم دادم پولس به کسانی که دور او به عنوان رهبر جمع شده بودن می نویسه و سعی میکنه که اونها را از طرفداری خودش من کنه یکی از چیزهای فوق العاده ای که پولس مینویسه در سباب اولی که در مورد خرد می نویسه و اینکه چطور انجیل همگام با خرد این جهان نیست او کسانی رو راهنمایی میکنه که پولس را به عنوان رهبر بزرگ قبول داشتن با این حال پولس شروع به نوشتن چیز فوق ای برای کسانی که او را نقد کرده بودند میکنه کسانی که به پولس به دید یک دشمن نگاه می‌کردند و کسانی که بر علیه او شورش کرده بودند کیتوس به پولس میگه که کسانی که او را در قرنتس نقد کردند اعتبار شاگردی پولس رو به چالش کشیدند اونها اعتقاد داشتند که پولس نباید به خود لقب شاگرد رو بده ظاهرا اونها درباره استانداردهای شاگردی که شما در مورد اون در اعمال رسولان خوندید چیزهایی میدونستند بر اساس اون استاندارت ها شاگرد کسیه که از زمان تعمید مسیح تا سعودش به آسمان با او بوده این دلیلیه که باعث میشه امروزه این نظریه به صورت اساسی مشکل داشته باشه و نتونیم کسی رو امروز شاگرد بدونیم خب پولس با مسیح نبوده و قرنتیان میگفتن تو شاگرد نیستی پس تو در مقامی نیستی که یک نامه رسالت برای ما بنویسی و ما رو توی اون نامه سرزنش کنیم به این دلیلی که ما غالب دوم قرنتیان رو مربوط به اعتبار خادم میدونیم در این نامه پولس به ما یه شاهکار درباره اعتبار خادم میده در شش باب اول این نامه پولس نیمرخ فوق‌الاده‌ای از خادم رو به ما میده با این حال چیزی که پولس در این های بسیار زیبا در مورد خادم میگه یک راهنمایی برای کسانیه که امروزه شبانها را حمایت می‌کنند و دور یک شبان رو می گیرند. پولوس فقط شببان رو راهنمایی نمیکنه کسانی که شبان هستند میتونن شش باب اول این نامه رو استاد خودشون بدونن اگه شما به جایی برید که خادمین جوان رو تربیت میکن می بینید که اغلب اوقات از دوم قرنتیان برای اونها معظ می کنن. به این دلیل که در اینجا شما میتونید متنهای های پیدا کنید تا کسی رو که میخواد خادم بشه به چالش بکشید یادتون باشه که کتاب مقدس قبلا در باب شش اعمال رسولان به ما چیزی گفته و در بابهایی هایی که در مورد عطایا دیدیم یعنی اول قرنتیان فهمیدیم که تمام عطایای روحانی روحانی هستند ولی بعضی از اونها کاربردی هستند و بعضی از اونها شبانی تمام کسانی که میخوان خادم انجیل باشن باید راه جدایی بین این دو موضوع رو فرا بگیرن وقتی پولس در نامه دوم به قرنتیان از کلمه خادم استفاده میکنه این کلمه مفهوم گسترده تری رو شامل میشه پولس به افسوسیان نوشته بود که مسئولیت کلیسا در گرد همایی های کلیسا باید چی باشه به نظر پولس خدا به کلیسا افرادی که صاحب عطیه هستند داده مثل شبان و معلم معلم کسیه که با عتی ای که داره تعلیم میده امروز ما از کلمه شبانی کردن بیشتر از کلمه مشاوره دادن استفاده نمی کنیم خب ما میدونیم که مشاوره دادن یعنی چی؟ شبانی که معلمه و این معلم مشاور هم هست کسی که مشاوره میده معلم هم هست حالا پولس در افسوسیان باب به روم میگه که خدا مردانی اینچنینی به کلیسا داده مردانی که هم مشاور هستند هم شبان یعنی هم معلم هستند و هم شبان و این هدفیه که اونها باید هر دفعه که پشت تریبون میرند اون رو تعلیم بدن تا مقدسان رو برای کار خدمت برای بنای بدن مسیح آماده بکنند. منظور پولس از استفاده از کلمه مقدسان ایماندارانه نه کسی که بعد از مرگش یک راست به بهش میره بر اساس صحبت های پولس تمام کسانی که پیرو مسیح هستند مقدس شمرده میشن شدگان مقدس خوانده میشن پولس در نامه اولش به قرنتیان به راهنمایی کسانی میپردازه که معصذ شده هستند و چون معصذ شده هستند مقدس خوانده میشن پولس معتقد همه کسانی که با مسیح تعهد دارند پیرو مسیح خوانده میشن معنیش اینه که اونها مس شده هستند پولس از اسم مقدس برای کسانی که مس شده هستند استفاده میکنه حالا وقتی که تمام مقدسان یا کسانی که مس شده پیرو مسیح میشن یا به او ایمان دارند به کلیسا میآیند و شبان شروع به تعلیم و مشاوره دادن به اونها میکنه هدف اون شبان باید این باشه تا مقدسان رو برای کار خدمت آماده بکنه برای خدمت جهت بنای بدن مسیح به این معنی که کار خدمت کردن واقعا به مقدسان سپرده شده نه به شبان. شبان معلم نقش یک مربی رو داره که تیم مقدسان رو رهبری میکنه واقعا توی زمین چه کسی با توپ بازی میکنه؟ مربی یا تیم این تیم که با توپ بازی میکنه مربی بیرون از زمین میسته و فقط بهشون میگه چطوری بازی کنن. اگه شبان معلم وظیفه خودشو بدونه اون میتونه مربی خوبی باشه. مقدسان کسانی هستند که هر هفته به صورت کامل به کار خدمت مشغولند و اعضای تیم هستند. به این معنی که وقتی شبان دعای برکت رو میخونه و مقدسان کلیسا رو ترک میکنند کار خدمت شروع میشه. ما فکر میکنیم که کار خدمت همون موأزیه عالی شبانه این خدمت نیست کار خدمت زمانی شروع میشه که مقدسان کلیسا رو ترک میکنن اگه وظیفه کلیسا در مراسم کلیسا انجام بشه مقدسان باید از کلیسا بیرون برند در حالی که از مراسم کلیسا تجهیز شده باشند الهام گرفته شده باشند و به چالش کشیده شده باشن. و به صورت کامل مشغول به کار خدمت بشن این به این معنیه که پولس نامه فوق‌الاده خودش در مورد اعتبار خدمت رو برای ایمانداران نوشته نه فقط شبانها تمام تولدهای تازه و اشخاصی که نجات پیدا میکنند فقط یک دلیل داره و دلیلش خدمتی هست که توسط شاگردان در کلیسا انجام میشه اگه با نگاهی باز و از بالا به دوم قرنتیان نگاه کنید متوجه میشید که اولین چیزی که پولس میخواد در این نام از اون صحبت کنه تمرینات خادم هست پولس به ما میگه که خدا چطوری به ما تمرین میده تا یه خادم بشیم. پولس تجربه خودش رو در آسیا اینجا بیان میکنه. زمانی که او رو در لستر سنگسار کرده بودن تا بمیره، می مینویسه چون میخواد ایمانداران بدونن که چه اتفاق وحشتناکی رو پشت سر گذاشته، وقتی که او حتی از زنده هم ناامید شده بود، میگه به واقع احساس میکردم حکم مرگمان صادر شده. اما همه اینها روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را زنده می پولس این بخش رو با این جملات شروع میکنه. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای بخشنده همه دلگرمی هاست. که به ما در همه سختی هایمان دلگرمی می تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها دلگرم سازیم. حولوس اینجا میگه وقتی که ما در رنج آزار هستیم فقط یک نفر میتونه به ما آرامش بده و اون خداست. مثلا به مردی فکر میکنم مثل آدمیرال ارمیادنتون انتون کسی که هفت سال اسیر جنگی بود و چهار سال رو در زندان انفرادی به سر برده بود. تصور کنید که چهار سال رو در یک اتاق تاریک سپری کنید در حالی که با هیچ انسان دیگری ارتباط نداری. کی میتونه به شما آرامش بده؟ پس تنها کسی که میتونه به شما آرامش بده خداست. وقتی ارمیادنتون از زندان در اومد، او از خدا برای تجربهی که داشت شک گذاری میکرد. این تجربه چار ساله در زندان انفرادی باعث میشه که ارمیادنتون یک حقیقت عظیم رو کشف کنه. خدایی که اونجا با او بوده میتونه ما رو آروم کنه. بر اساس صحبتهای پولوس رسول خواست خدا اینه که بعضی وقتها ما توی چنین وضعیتهایی باشیم. وضعیتی که ما رو به سوی خدا میبره تا بفهمیم که خدا اینجا هست و خدا سرچشمه تمامی آرامش هاست. او میتونه ما رو آروم کنه و خدا به تنهایی میتونه و قادره که ما رو آروم کنه. آیا تا به حال ای داشتید که بفهمید حضور خدا در همه جا هست؟ آیا تا حالا متوجه شدید که خود خدا میتونه شما رو آروم کنه؟ شما نباید صبر کنید تا تجربه ای مثل تجربه بحرانی ارمیادنتون داشته باشید. همین الان از خدا بخواید که تا این رو براتون آشکار کنه. با یک ایمان درست میتونید با دعای با ایمان به این موضوع برسید و اون رو لمس کنید. او با محبت میخواد که خودش رو به شما آشکار کنه. اونا میگن مبلغ مسیحی یعنی یک گدا به گدای دیگه میگه که جای نون کجاست. در آیه دوم، کورنتیان پولس به ما میگه که دلگرمی یک خادمینه یک قلب سختی کشیده به یک قلب سختی کشیده میگه که دلگرمی کجاست یکی از دلایلی که خدا اجازه میده فرزندانش سختی بکشن اینه که وقتی ما در سختی هستیم به سوی خدا میریم و ما در خدا دلگرمی و تسلی پیدا میکنیم دلیل دیگه که چرا خدا اجازه میده ما تجربه جفا و رنج داشته باشیم اینه که بعد از اینکه خدا به ما دلگرمی داده، زندگی ما تبدیل میشه به زندگی کسی که تجربه رنج رو داشته. خب بعدش چی میشه؟ چه چیزیه که باعث میشه ما خادمین تسلی دهنده کسانی باشیم که رنج دیدن؟ واقعیت اینه که ما یک عدیبیم؟ یا واقعیت اینه که ما تا مقاطع بالای تحصیلی درس خوندیم؟ یا واقعیت اینه که وقتی ما مجروح میشیم به سوی خدا میدیم و دلگرمی پیدا می کنیم که فقط در خود خدا پیدا میشه ما وقتی دردمند هستیم خدا درد ما رو تبدیل به آرومی میکنه به این دلیل که با رنج و درک ما از دلگرمی خدا ما دارای شرایطی میشیم که یک خادم معتبر برای تسلی دادن به دیگران بشیم بعد ما میتونیم که فیض خدا رو شهادت بدیم و خادم فیض او باشیم میبینیم که پولس به کسانی که اعتبار شاگردی پولس رو زیر سوال برده بودن میگه من یک خادمم بذارید بهتون بگم که خدمت واقعی چیه و اعتبار خدمت واقعی چیه یکی از چیزهایی که اعتبار خدمت رو نشون میده رنج کشیدن هست چون رنج کشیدن چیزیه که خدا معمولاً برای تمرین دادن به یه خادم به کار میگیره اینجا پولس در مورد تجربه سنگسار شدنش در لستر میگه خیلی جالبه که پولس میگه مرگ رو در درونم حس میکردم ولی اونجا یاد گرفت که نباید بر خودش اعتماد کنه بلکه باید به خدا اعتماد کنه. ما میبینیم که پولس انسانگرا نبود. انسانگراها میگن من توانایی انجام کاری رو دارم. من میتونم این رو انجام بدم. سرنوشت من دست خودمه. من سرپرست روح خودم هستم. پولس میگه که این یه حکم مرگه بر اساس پولوس برای شمایی که به خودتون تکیه دارین این مثل یک حکم مرگ میمونه. خدا اجازه میده که پولس به قدری رنج بکشه که از نقطه پایداری به ناامید شدن از زندگی برسه تا اینکه بتونه یاد بگیره که نباید به خودش اعتماد داشته باشه بلکه به خدا اعتماد داشته باشه کسی که از مردگان قیام کرده. بعضی ها معتقدند در لستره پولس عینا از مرگ قیام کرد. نتیجه این تجربه اینه که پولس به این عقیده رسید که خدا او رو رهانید خدا نجات پولس بود و خواست خدا اینه که او رو رها کنه پولس به قرنتیان میگه این جایی بود که من سند شاگرد بودنم رو گرفتم در باب دوم پولس به ما یک قسمت زیبا در مورد وظایف خادم میده وظیفه یه خادم چیه این خیلی مهمه که باید بفهمیم که چه کاری انجام بدیم من نمیدونم که به عنوان خادم ایسای مسیح آیا ما میدونیم که چی کار باید انجام بدیم؟ در باب دوم مایات 14 تا شانزده پولس وظایف یک خادم رو اینطور بیان میکنه. اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح در موکب ظفر خود میبرد و رایهی خوش شناخت او را به وسیله ما در همه جامی پرکنند. زیرا برای خدا رایهی خوش مسیح هستیم چه در میان نجات یافتگان، و چه در میان هلاک شوندگان اما برای یکی بوی مرگ می‌دهیم که به مرگ راهنمون می‌شود و برای دیگری عطر حیاتیم که حیات به بار می‌آورد و کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشد در این قسمت پولس به ما میگه که وقتی که شما رنج میکشید، عطر ثمرات روح خدا که در شما فشرده شده بیرون میاد مثل گلی که وقتی در دستانتون فشار میدین قطر اون بیرون میاد شما هم وقتی در فشار هستید عطر مسیح از شما بیرون میاد این استعاره بسیار زیباست. است اولا مردم وقتی بوی مسیح را از زندگی شما حس میکنند به سمت مسیح و نجات نزدیک میشن اون وقت بوی زندگی شما اونها رو به سمت زندگی راهنمایی میکنه اما فرض کنید که مردم زمانی بوی مسیح را از شما حس کنند که شما در یک وضعیت بد هستید و بوی مسیح از زندگی شما بیرون میاد و اونها قبول نمی کنند. اون وقت بوی مرگ شما اونها رو به سوی مرگ راهنمایی میکنه. به این دلیل که دیگه اونها نمیتونن یه روزی جلو خدا بیستند و بگن من هیچ وقت نمیدونستم، من هیچ وقت نشنیدم، خیلی ساده میگم من نمیدونستم. به عبارت پولس میگه شما به عنوان کسی که بوی مسیح رو منتشر میکنید و به عنوان خادم مسیح در جهان هستید، بعضی از مردم رو به مرگ ابدی محکوم می کنید و بعضی رو به سمت زندگی رهبری میکنید جای تعجب نیست که پولوس اعلام میکنه و کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشه در باب بعدی پولوس جواب سوالش رو میده او مینویسه نه این که خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود بگذاریم بلکه کفایت ما از خداست در باب پنجم پولوس توضیح زیبای دیگه ای رو از وظایفه خادم میده کتاب دوم قرنتیان طرح کلی سختی داره و من تلاش میکنم که به طور ساده خلاصه چیزهای عالی رو که پولس در مورد مدل وظیفه یک خادم مینویسه بیان کنم. در باب پنجم پولس از خودش در مورد اتهام دیوانه بودن دفاع می کنه. بعضی از مردم به پولس این اتهام را زده بودند و گفته بودند که او از خودش فاصله داره. حالا اتهام اونها درست بود. این درست بود به این دلیل که در واژه یونانی غیرعادی فاصله داشتن از خود ترجمه میشه ولی واژه واقعی و اتهامی که اونها زده بودند این بود. پولس تو غیرعادی هستی. و به او می پولس مرکز زندگی تو با مرکز زندگی ما فرق میکنه. البته که مرکز زندگی اونها دور خودشون میچرخید و این یک نظریه انسانگرایی که میگه ما میتونیم اینو انجام بدیم ما ذهن خوبی داریم و این چیزیه که ما نیاز داریم. نظریه خود اونها مرکز زندگیشونه. اونها به طور اختصاصی خودپرست بودن. هر کاری که انجام می برای خودشون انجام می دادن. نفس اونها مرکز زندگیشون بود. پولس با اونها در باب پنجم هم عقیده است. بله من ام من اطمینان دیگه ای توی زندگی دارم. اطمینان من بر مسیحه. تمام زندگی من دور مسیح میچرخه پولوس اتهام اونها رو میپذیره. همونطور که پولوس از خودش بر علیه اتهام اونها دفاع میکنه او به ما بیانیه فوقلاده دیگه ای رو در رابطه با وظیفه خادم میده. این بیانیه به طور خلاصه اینه. پولوس میگه اگه من برای شما جدا از خودم به نظر میرسم یا غیر عادی به این نکته توجه کنید. یک سری مطلقها در زندگی دارم و به اونها ایمان دارم. اول از همه من ایمان دارم یکی برای همه مرد و دوم من ایمان دارم که همه گم شده و سوم اینکه من ایمان دارم که همه باید بشنوند. من ایمان دارم که یکی برای همه مرد عیسی مسیح برای کل جهان مرد معنی شینه که کل جهان گم شدهاند. اگه کسی توی این دنیا گم شده نبود ایسای مسیح به خاطرش نمی مردد. همینطور من ایمان دارم که همه مردم دنیا باید بشنوند که مسیح برای اونها مرده. پس من، مثل یک مرد دیوانه زندگی می کنم من غیر من مثل شما زندگی نمی کنم سیستم ارزشی که شما دارید من ندارم چون من به این سه مطلق روحانی ایمان دارم در این زمینه پولس به ما میگه او به خدمت خودش و پیام آشتی که میده متعهده، این برای تمام خادمین مسیح صدق میکنه پولس اینو در چند آیه زیبا در باب پنجم آیات 19 تا 21 عنوان میکنه به عبارت دیگه خدا در مسیح جهان را با خود آشتی میداد و گناهان مردم را به حسابشان نمیگذاشت و پیام آشتی را به ما سپرد پس سفیران مسیح هستیم به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی میخواند ما از جانب مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شوید. چیزی که پولس میگه اینه در آغاز خدا و انسان با هم بودن یکی بودن ولی خدا انسان رو موجود با حق انتخاب آفرید انسان حق انتخاب داشت و خدا رو انتخاب نکرد حالا وقتی که این اتفاق افتاد خدا نمیتونه به گناهان انسان نگاه کنه پس خدا هم از انسان برگشت و این باعث شد که بین خدا و انسان جدایی رخ داد این معزل اساسی که کتاب مقدس به راهنمایی در مورد اون میپردازه. پولس در مورد مطلقهای غیرعادی خودش میگه من ایمان دارم وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، او این امکان رو فراهم کرد که خدا دوباره به انسان نگاه کنه و با جهان آشتی کنه. برای خیلی از ماها که بر اساس مرگ مسیح با خدا آشتی کردیم، خدا به خدمت و پیام آشتی که داده متعهده. ما باید به نزد مردم جهان بریم و بگیم نمی دونید که خدا با شما آشتی کرده وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مرد خدا با شما آشتی کرد چون او تمام گناهان شما رو بر عیسی نهاد در این پیام بسیار عالی جایی که پولس در مورد وظیفه خادم صحبت میکنه میگه این وظیفه ماست که خادمین صلح و آشتی باشیم پیام ما پیام آشتی هست. ما باید به کل جهان بریم و کسانی رو که گم شده هستن نجات بدیم و به اونها بگیم که یکی به جای همه ما مرد، یکی برای شما مرد و وقتی که یک نفر برای شما بمیره، او شما رو با خدا آشتی میده. شما باید به این ایمان داشته باشید و برگردید و با خدا آشتی کنید. اگر شما با عنوان کسی که با خدا آشتی کرده وظیفه ای رو که خدا به شما داده درک کنید، در این باب فوقلاده پولوس به ما میگه که باید وظیفه یک خادم رو درک کنید. ما باید درک کنیم کسی که با مرگ مسیح با خدا آشتی داده شده دیگه نباید برای خودش زندگی کنه بلکه برای کسانی زندگی کنه که باید با خدا آشتی داده بشن. به نظر پولس رسول این وظیفه یک خادمه این خدمتی که باید ما رو متحد کنه و پیامی که در این خدمت هست باید ما رو متحد کنه همونطور که این پیام رو به افراد گم شده در میون میذارید این بسیار مهمه که بفهمید شما چی هستید. به واسطه شهادت شما و زندگیتون بوی زندگی یا بوی مرگ به مشام دیگران میرسه. اگر اونها پیام شما رو باور کنن، شما بوی زندگی برای اونها هستید و اگر پیام شما رو رد کنن، شما برای آنها بوی مرگ هستید. و کتاب مقدس میگه کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشد. از خدا ممنونم که پولس میگه که مسیح برای این چیزها کافیه. نه اینکه خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود بگذاریم بلکه کفایت ما از خداست این نامه فوقلادهی در مورد خدمت دقت کنید و با دعا این نامه رو مطالعه کنید و خودتون وظیفه و خدمتی رو که باید همه ایمانداران به اون متعهد باشند ببینید من دلم میخواد الان که با شما صحبت میکنم شماهایی که دارید گوش میکنید و تا به حال پیام آشتی خدا رو نشنیدید بدونید که خدا نمیخواد که کسی رو نابود کنه پس بیایید و توبه کنید و بدونید که امیدی برای زندگی ابدی هست ولی تنها در خدا میتونید پیدا کنید کتاب مقدس میگه و به واسطه او همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهند به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بی‌برسلی پدید آورد پس بیایید امروز به او اعتماد کنید و با خدا آشتی کنید و نجات رو دریافت کنید عزیزان امیدوارم بدونید که آشتی داده شده به چه معنیه؟ این به معنی راستوریس کردنه. درست مثل اینکه تو یک فروشگاه قرضی بالا وردین و شخص دیگه میاد و قرضتون رو پرداخت میکنه. اون قرضتون رو صاف میکنه و قرضهایی رو که دارین پرداخت میکنه. از اونجایی که ایسا این کار رو برای ما انجام داده اون خدمت مسالحه رو به ما سپرده. هدایت کردن دیگران به این سمت که قرضشون رو ایسا پرداخت کرده حالا تا دفعه بعد که با ما همراه باشید امیدوارم قلبتون پر بشه از شادی دانستن این موضوع که شما با خدا صاف شدین و خدا بهتون شجاعت بده تا این خبر خوش رو به دیگرون هم بگین اینکه شما هم میتونید با خدا عاشدی کنید فیض و آرامش خداوند با شما و خانواده شما باشه